و میتونه دوباره این وحدت و کشور ما به صورت خیلی میهن دوستانه دوره برگردونه تو این 200 یعنی هر هر چی اینا دشمن ایران رشته کردن پم بکنه به راحتی آب خوردن خب این که ما وسط جمشید انقدر زمان گذاشتیم و میذاریم و مجبوریم که باز از این جلسات بعدم بذاریم به خاطر این اتفاقاتی هستش که در زمان جمشید افتاده ببینید امروز شناسی که چندتا شاخصه داره، مکتب داره که از مکاتب معروفش آلمان و یکی دیگه هم فرانسه هستش به این نتیجه رسیده که بینید تاریخ خوبه بل ولی اصلا ارضا کننده نیست شما همینان های اخامنشی رو بخونید کمیتیبای سومری رو بخونید چیزی چانچنانی دستگیرتون نمیشه از زندگی مردمان فقط اومد ایره کش, ایره ایکس اومد ایرو کش، ایگرید اومد ایکس کش، اینقدر خلافت کرد، اینقدر گفت حکومت کرد، اون گفت کرد، اون اون امپراتوری کرد، همین. ما در دنیای کهن ریاضیات دوران کهن اطلاعات بسیار اندکی داریم. نمیگم نداریم، داریم، ولی بسیار اندکه. اطلاعات پزشکی همینطور همین طور، شیمیمون همین طور، در صورتی که داریم میبینیم یه چیزای خیلی جالبی مثلا این سومریا مثلاً 80 سیاره رو کشف کرده بودن. خب اینا اگر تلسکوپ نشن چجوری اینا رو کشف کردن؟ ولی فقط میدونیم که این کار کردن. هیچ چیز دیگه ازشون ما نداریم انسان شناسه امروز من گفتن آقا اون تاریخ دیگه برای ما اصلاً ارضا کننده نیست. یه دقیقا مثل اتفاقی که تو فیزیک افتاد. گفتن خب فیزیک نیوتنی خوبه خیلی هم جای خودش. ولی خیلی پرسش ما رو پاسخ نمیده. اونمند چیکار کردن؟ دربی به وجود اومدن فیزیک کوانتوم. که بسیار از جوان‌های ناشناخته رو شناسند. اینکه ما میگیم اینا دورس این داره جا میفته اینکه یعنی تقریبا میتونم میگم دو دهه یا سه دهه خیلی سری گسترش پیدا میکنه و نه تنها دیگه برای ایران حتی اومدن دوباره حتی من برای چینم آوردام که این کار دارن دوباره آغاز میکنن بعد خدمتشون عادت شده که برای هندو دارن این کار رو انجام میدن حتی برای آمریکای جنوب و قبایل دورافتاده آفریقایی و خیلی هم جالب نتایج بسیار قشنگی دست پیدا کردن حتی یکیش اومده بود برای تورات اومده بود واکاوی کرده بود اون اخراج انسان از بهشت اون که چرا لباس نداشت یا برایا نیاز به لباس پیدا کرد بسیار زیباست این دادم بگم یه نماد دوره بله اصلا این نماد دوره دیگه اصلا نگفته ما بلکه حتی پیش از اسلام هم بوده زمان یونانی‌ها هم بوده زبان صدم اسلام بهش اعتقاد داشتن الان دیگه کاملا دیگه درجه میافته و افتاده تو این مسیر و جلوش هم نمیشی گرفت و مطمئنا این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد جمشید و من یک خورده روش خیلی علاقه دارم خیلی روش علاقه دارم به خاطر سه تا اتفاق مهم که در زمان جمشید میافته یکی اینکه زندگی بشر به یه حالتی میرسه که مرگ و میرش کمتر میشه چه خودش چه گاو و به قول معروف این باعث ازدیاد جمعیت میشه خب اینو انسان شناسان کاملا کشف کردن که همشون به این اذعان کردند که یک دوره ماقبل تاریخی برای انسان ها اتفاقی افتاده ببینید الان ما هنوز این اسناد جمشید و اینا هم به دست غربیا نرسیده مطمئن باشید شک نکنید بی گمان به دست اونا برسه انقلاب بزرگی خواهد شد در تاریخ نویسی ایران که به امید خودم شاید همین فکر کنم تو یکی دو سال آینده این کار انجام بشه ببینید آقای یک گستاخی های بزرگی به تاریخ ایران کرده البته زحمت کشیده اینو من رد نمی‌کنم کتاب اندخوسی انسان اندخوسی شهریارش واقعا زحمت کشیده ولی به خودش اجازه داده بیاد ذهنیت خودشو به عنوان یک اصل به قبولونه همون که گفتیم تو ریاضی فرض روی فرض باطله دوستان آقای سوند روزی حرف خیلی خوبی زدن که انسان نمیتونه اون زمانو به یاد بیاره بعد همین پرسش برای آقای کریستین اصلا به پیش میاد میگه خب چطوری که جمشید نخستین پادشاه هندی ها هست ولی دیگه بقیه نیستن نه کیومرس هست نه هوشنگ هندیا میشناسن نه تهمورسی میشناسن نه سیامکی میشناسن نه مشیومشیا میشناسن، نه فراواکی میشناسن خب اومدن بگن خب هندیا که از ایرانیا جدا شدن حافظه تاریخشون پاک شد خب این خیلی غیر علمیه چرا چون خیلی به هم نزدیکن خیلی هم با هم ارتباط داشتن امکان نداری بیاد 6 تا قبل 5 تا 6 تا اسوری قبل خودش کلا حذف بشه ممکن بود مثلا سیامک اونا یه شکل دیگه ای بگیره یه کارهای ای انجام بده این پرسش براش پیش میاد که چطوره که از جمشید به قبل ندارن اینا اومد دوباره از یک کاتالیزور استفاده کرد اون چیزی که همیشه هر جا گیر میکنن سری میان سراغش گفتن خب اینا حتما ماره غیر آریایی ها بوده و اینا رو ایرانی ها از وارد نجده ایران شدن از غیر آریایی ها یاد گرفتن و خیلی خندهدارره اصیل ترین واژه های که یک دونه حتی میگم نمیگم واژه حتی اواشم غیر آریایی نیست چطور ممکنه که این از آر... غیر آریایی گرفته باشن این پرسش مونده بود تا اینکه ما به یه نتیجه رسیدیم که با آقای آیفیتون ما صحبت کردیم با آقای دکتر حسن تو صحبت کردیم تو فرهنگستان که الان بزرگترین ریشه‌شناس ایرانن یعنی کتاب پنج جدی که ایشون داده تکه یعنی تو ایران کلا شناخته شده اند و بزرگترین ریشه‌شناس ایرانن ما به نظری رسیدیم به کمک متون کهن و پهلوی به ویژه بندهشت بندهشت یه جاهایی داره که در مورد شهرها و رودهای صحبت میکنه ندرسی های فراوانی داره اون هم به خاطر دلایل سیاسی و مذهبیه یه جاهایی که داره از آفرینشش اینا صحبت میکنه بی نظیره بندهشت میاد میگه که از کوه کوها صحبت میکنه میگه کوها به خاطر زلزله رویدند. درد آی دویتر مانور بروریان بزرگترین لرز شناس جهان هستندشون، اینو به صورت شگفت آوری تو کتابشون نوشتن و حتی تو کنگره زمیشناسی آمریکا اینو اثبات کردن آقای دکتر نباتی که استاد اول زمیشناسی احال حاضر ایران هستن و کتابشون هم تو کل ایران چه داشت که دولتی چه آزاد رفرنسه ایشون هم اصلا یه مطلب دارم به نام رویش کوه البرز و حسین زلزله چقدر این مطلب چیز زیباست مطلب بوندهش این پرسش من پیش اومد. که من بوسودا در میون گذاشتم گفتم حتما اینو مقاله کن گفتم چاشمینه حتما مقاله میکنم و همین یعنی الان برام هم میگم تو رادیو در اولین بار بخش میشه حالا نمیدونم به ضررم بگم یا بوسودا ببینید چرا اونا کیومرسا ندارن درسته حافظه ما اینو حفظ نکرده اصول شناسی ما دو مدل داریم یه اسطوره بومی داریم یا اسطوره ای داریم که توسط یه قشر فرهنگی ساخته میشه شما مثلا مید لروسا میدی یه اسطوره هست که اصلا نه نشیدیم نه هر استانی میرید میید یه سری اسطوره برای خودش داره مثلا من یه اسطوره من میگم یه جایی میگفتن اگه درخت داره خوش می‌شه رو می‌ذارن کنارش درش پارچه می‌بندن میگن فکر می درخ که فکر می‌کنن درخت ازش می‌ترسه که اگه روشنا نکنیم ما میویم غلطت میکنیم مثلا درخت فرداش مثلا شروع به کار روش کردن ما همچه افسانه‌ای حاش اسطوره ایران نداریم این محلیه ساخت ذهن مردم بومی و عادیه عامی خب شما این پرسش برام بی‌شومد که چطور ممکنه این بشر اون موقع بوندهش که ما میدونیم از متون عوضایی ورداشته گرته ورداری کرده اومده آفرینش کوه به این قشنگی دقت بیان کرده و خب برای ما پرساش پیش اومد اینا که آفرینش کوه براشون مهم بوده آیا آفرینش انسان برایشون مهم نبوده؟ آفرینش خودشون برایشون مهم نبوده؟ نتونستم بگن که آقا همین پرسش هایی که امروز برای من پیش میاد که ما چه جوری صحبت کردیم چجوری ویل لباس گفتن یاد گرفتیم طبیعتا بر اون ساخته شده و یکی از دلیل هایی که هستش هم خدمت من هست که الان درن اولین بار از این رادیو دارم میگم ما گفتیم توی بندی بود تو وندیداد که ازجمن نام گفت گفتجم فراز بودم و بچه ها میشوند آن دوستان گفتم که حتما واژه انجامن مت نظر نگرده داشته باشیم چون بسیار باششکار داریم از این ببرد. انجمن بسیار زیرک و باهوش موغان که حتی اروپایی‌ها به اینا میگفتن مگیوسی به عنوان همین کلمه ماژیکی که امروز ما داریم از این ریشه است به عنوان جادوگر در صورتی که ما میدونیم که زرتوش به شدت با جادوگری مخالفت کرده بوده انقدر دانش اینا بر اون موقع اون بالا بوده اینا رو بهش جادو میدیدن اصلا نمیدونستان درک کنن دانش اینا رو این اسطوره‌ای که ما پی... میایم پس از جدایی از هند درست میکنیم و وارد اسطوره‌ی خودمون میکنیم به کیومرس و کیومرث و تهمور سوسیامک و و و و تو به جمشید ساخته پس از جدایی ماست. اجا. یعنی این گروه ما شما ببینید الان کتاب درست نام برده شده به کوه اومده بررسی کرده شما ببینید همه اسطوره‌ی ایران یا تو کوه یه جایی درگیر میشن یا یه جایی به کوه داستان پیدا میکنند. اینا بالاخره یه جایی با کوهی اینا پیدا میکنند. ولی اینا میرفتن رفتند تو کوه ها میدیدن همین چیزی که ما می یه قاری هست یه نقاشی کشیده استخونی اونجا افتاده یا تیکیه پارچه ای مثلا اونجا افتاده اینها اومدن گفتن خب پس اینها نیاکان ما بودن اینها را به صورت علمی کتاب کردن حتما من شکی ندارم که اینها کتاب بوده به صورت کاملا علمی و اومدن این قسمت علمی و به صورت مذهبی وارد عویستا کردن این چیزی که ما الان در می میبینیم که داره خودشو نشون میده مثلا با عنوان نخستین انسان این پرسشی بوده که تو ذهن بشر و موقع شکل گرفته باشده بعد از دوره جمشید بلکه که از ما از هندیا جدا شدیم برای همین که هندیا اینو ندارن ما این کسی آریاد نگرفتیم اینو به دانش خودمون پیدا کردیم چون وقتی وخصی... مثلا انسان بعد از دوری جمشید برای مثلا یه 20 هزار سال قبل خودش اومده دیده بله دیده. اینا پرسش براش پیش اومده مثلا میگن ما از هندی ها مثلا 5000 سال پیش جدا شدیم پس تو 5000 سال پیش ما میدونیم که عصر هوشنگ تو ما نبوده عصر هوشنگ ب... وقتی اینا از ما جدا میشن این گروه های علمی ما گروه های مثلا مغان ما که اینقدر باشون تاکید داریم اینا به این نتایج رسیده بودن. تو کوها رفته بودن، دیده بودن، نقاشیار دیده بودن، گفتن نخستین خط مثل چون ما هنوز تو فارسی فعل نگاردن و نگاشتنمون یکیه. شما هنوز میگی حتی فردوسی میگه از نگاردن و نگاشتن رسیدیم. خب این تبدیل رو که حالا داستان داره برای خدمت خدمت عرض میگم همین یعنی الانشون نگاشتن و فعلش امر بکنید دوباره میشه نگار. بنگار. بنگار، بود بچه‌ها. یعنی فهمیده بودن که اولین حتی بیلی که من... یکی از اروپاییایی که بسیار بهش ارادت دارم چون واقعاً ایران دوست بود اومد گفت آقا این نگاردن هنرشه کر به منی بریدنه یعنی اینا میرفتن رو سنگ که میتراشیدن یا میکشیدن خراش که میدادن این اولین خطه اگر ما اومریم تاهامورس بله تاهامورس ما خط نداشیم به روش کتیبه بنویسیم منظور از خطی که داره در از زمان تاهامورس داره صحبت میشه همین آغازین ترین که به صورت شکل بز و و حیوانات و انسان های دارات شکار در بوده یعنی و اونا میدیدن ابزار شکارو رو اومدن گفتن تحموراس زیناوند یعنی کسی که اسلحه درست کرد اینا همه ساخته اون انجمن زیرک باهوش با دانش بود که بعد از اینا برسه همین تو هند پیدا نشد چون از ما جدا شده بودن علت جدایش هم بود که خیلی رفتو بودن تو خرافات بله خیلی رفتو بودن تو خرافات و زرتوشمون از این خرافات نجات داد ما رو برد به صورت دایش. اینها به صورت دانه ای الان بار من دارم تو این رادیو میگم. اینها اومده بودن به صورت دانشی چیزای دیده بودن. بهش پی برده بودن. اینا رو حافظه تاریخی ما نگر نداشته بله، ما نگران نダشته. ما یادم نمیاد که بودی، چی بود؟ اینا رو ما نمیدونیم. از کجا فهمیدن که از شمال اومدن تو سمت پایین؟ احتمالاً دیدن که خب مثلا هرچی سمت جنوب تر میان تعداد این قارا داری بیشتر میشه. قاره زاگرس بوده. بله مثلا مینه خب میگه خب اینجا جا برای زندگی بهتر بوده. فساد ما اونجا یه اتفاقی افتاده که اونا ازجا ترک کردن اومدن پایین. بعد اومدی گفتو خب ارزو شمالی سرماس حتماً یه سرمای بزرگی اتفاق افتاده. مثلا همین سرمای جمشید ما دارین ولی هندی‌ها ندالنش. بسیار اینا زیرک بودن. باعث افتخار ماست. شما معتقدی دیگه در دوره جمشید که جدا شدن قبل از اون دورج... سرما جدا شده؟ دوره جندرا نه دوره جمشید جدا نشدنا. اینا تو 5000 سال پیش با ما بودن. اروپایی ها میگن 4200 سال بعضی میگن 5200 سال یعنی هندی ها آخرین گروهی هستن که از ما جدا میشن برای همینه که اینقدر فارسی باستان و عوضایی باستان ولی ما میدونیم که آقا این پیش از این چیزی به نام سهموره سوکیومر کیومرس و سیامک و فراواک و مشی و مشیانه در استوره های اونا نبوده در هندو و که هنوز از هم جلوش نبوده وقتی اینا جدا میشه اونها فعب به دلیل بیشتر به خاطر دلیلی که با ما باشون داشتیم به خاطر خلوفگرایی که داشتن دانش ایران اینا رو کشف کرده قشنگ همه که اصل یخمدون 1400 تا پیشه هیچ کس رو زنش نمونه اینا بررسی کردن به این نتیجه رسیده بودن و اون کتابای علمی متاسفانه تو حملات گوناگون سوخته از بین رفته ولی با زیرکی و هوش و ذکاوتی که دارن که مایه افتخار امروز ماست اینو وارد اوستا کردن و به صورت دین تو دل مردم نگه داشتن شما میتونید علم رو به صورت دین تو دل مردم نگه دارید درست کارش اینه ولی تاریخ من خودم بعضی موقع یادم میاد که احمدشاه قاجار آخرین پادشاه قاجار بود یا محمدشاه قاجار تو اینکه این, این همه کتاب خوندیم رفتیم کلاس رفتیم امتحان دادیم تلویزیون رادیو ولی باز یادم میره بله انسان 14000 پیش یادش نمیاد که سرمایی بوده اگر این سرموار داره میگه اینا دیدن گفتن خب مثلا چجوری قاره کم میان اینور چرا اومدن اینور هرجا اومدن اینور کلونیشون بیشتر شده و حتما یه اتفاقی اون بالا افتاده که اومدن با این اومدن پایین گفت گفتن تو این عرض جغرافیایی چه اتفاقی میفته گفتن خب بس سرمایه بوده سرمایه طولانی سرمایه طولانی بوده تشکیل بادها رو فهمیده بودن اینا میگفتن خب باید یه یخبندانی بوده باشه که بعد هوا گرم شده باشه که اون خدمت رو هفته پیش من اورده بودم که بهش میگفتن بادهای جز بادهای خلیجی فهمیدن که این اتفاق یه سرمایه بزرگی بعد اتفاق افتاده باشه که بعدش این یخ‌ها آب بشن اون طوفان به وجود اومده باشه درسته همه اینا علمی بوده متأسفانه اون که تا به دست ما نرسیده ولی خوشبختانه با افتخار و سربلندی و سربلندی در اوستا و کتاب‌های پهلوی به دست ما رسیدن. بله متشکریم حالا. و ببخشید میگم میگم باز هم تشکر می‌کنم اولین باره دارم میگم حالا نمی‌دونم زودتر باز شاید مقاله میکرد حالا نمی‌دونم حالا اشکالی هم, هم نداره ایرانی شما بالاخره زودتر فرمودین حالا, حالا این پخش فکرم کنم دو سه ماه طول میکشه حالا این پخش پرسه دو ماه فکر طول بکشه بعد از این تاریخ و تا اون موقع حالا شما مقاله تون هم می‌گیرین. بله. خیلی متشکرم. مقای فیروزی بحث خودمون رو با شما ادامه بدیم شما پس رسیدید دلالتو فرمودین که اینها شخصن؟ حالا وارد خود اون مقوله ای که شما از باستانشناسی و جنتیک، علم جنتیک رسیدید این کیومرسی که اومد این حکومت تشکیل داد کی بود از کجا بود؟ آیا قبل از کیومرس حکومت هایی بودن یا نبودن چرا نبودن و این حکومت در چه محدوده تاریخی و جغرافیایی تشکیل داد اجازه بدیم فقط یه نکته خیدوانتون بگم بله. ببینید برای جهان خیلی وقت پیش رفته به سمت جهان باستان شناسی و تاریخ به سمت دور شناسی ولی به چه صورت؟ ببینید الان من شما با حال میخوایم دوره بسیدیم باید یک چیزی شف شاهد باستان شناسی یا نوشتایی داشته باشیم تا بریم دوره بسازیم که ما باید یه تیکیه پازل باشه و بقیش بسازیم و اینجور تداره هر آدم این که نمیشه که ما ببینیم که حتما مثلا کسی این ف... انجمنه تشکیل داده اینا ببینید در مصر پیش از دوران پیش از تاریخ این نو... این حرکت جدید تو متون نیست نوشته شده که های مصر بالا و پایین یا علیا و سفلای پیش از تاریخ فرهنگ فلان فرهنگ فلان فرهنگ فلان فرهنگ فلان آخرین فرهنگ پیش از تاریخ مصر به کجا رسیده از نظر باستان شناسی دقیقا جایی که سلسله های مصری آن تو متون شروع میشه یعنی نخستین فر فرعون از نخاستین دودمان بعد از این دوره هاست این طرف رفته خیلی راحت بگم اون جریان شناسی رفته تا اولی اثبات کرده حالا دوره های پیش از سری خود دوره بنیار میخواد بره از قبل از اون شروع کنه و این واقعا کاراکتر است ما هنوز وسط یه خونه خرابه هستیم تازه میخوایم این خونه خرابه رو ببین بقیه آجر رو ریختهشم بریزیم دور هر خودمون مثلا یه داستان بسازی نه شما اول خونه رو بسازید بعد و نکته خیلی جالب آخرین فرهنگ در مصر باستان نقعده سس و قبل از اون این فرهنگ و قبل از اون یه نکته خیلی مهم توش داره به این صورت که در این اومده که در تر لفتشون بخوام دقیق از بگم جزریان و نقعده سی ببین نقعده رو گفتن دودمان سفر یه دودمان خودشون ساختن قبل از دودمان یک و فلان اتفاقات افتاده که تأثیر فرهنگ مصر جنوب بر شمال دیده می شود پس این یعنی متون هم می نارمر یا منس از جنوب اومده به شمال پس این همون حرکته این فرهنگ نقدر سه متون متاخر رو تأیید میکنه. پیش از اون فرهنگ جزریانه میه که باستان شناس های می که این احتمالا اروپایی می که این تأثیر تغییرات فرهنگی تأثیر آسیاس بر مصر باستان شناس بومی و امریکایی برخلف اروپایی گفتن گفتن نه تو متون گفته میشه که این تأثیر نارمه قبل از منسه این نارمه رو از منس شده کردن این اتحاد قبل از منسه این دفعه شمال رفته جنوبه گرفته